فصل دوازده مغز ایستگاه پخش و دریافت فکر گام یازدهم، به سوگ سروت بیش از بیست سال پیش نگارنده که با دکتر آلمر آرگیتس و دکتر الکساند گراهامبل فقید همکاری میکرد مشاهده کرد که مغز انسان هم ایستگاه پخش و هم ایستگاه دریافت ارتعاش فکر است هر مغز انسانی به واسطه ی هوا به شکلی شبیه به آنچه در اصل پخش رادیویی به کار گرفته می شود، قادر است ارتعاشات فکری را که از دیگر مغزها آزاد می شوند دریافت کند تخیل خلاق را که روزان در فصل موسوم به تخیل آمده مجدداً مورد مقایسه و توجه قرار دهید تخیل خلاق مجموعه دریافتی مغز است که افکاری را که از مغز دیگران آزاد می شوند دریافت می کند. مغز عامل ارتباط بین خداگاه یا ذهن تحقلی و چهار منبعی است که فرد تکانه های فکری را از آن دریافت می کند. ذهن وقتی تحریک می شود، حساس تر می شود. این روند افزایشی از طریق حیجانات مثبت یا حیجانات منفی روی می دهد. ارتعاشات فکر از طریق حیجانات افزایش مییابند ارتعاشاتی که سرعت بسیار بالایی داشته باشند تنها ارتعاشاتی هستند که به وسیله هوا از ذهنی به ذهن دیگر دریافت و منتقل میشوند فکر انرژی است که با سرعت ارتعاش بسیار بالایی حرکت میکند فکری که به وسیله یکی از هیجانات اصلی افزایش یافته باشد یا تعدیل شده باشد با سرعتی خیلی بیش از فکر معمولی ارتعاش می‌یابد این نو فکر از طریق دستگاه پخش مغز انسان از مغزی به مغز دیگر منتقل می‌شود هیجان آمیزش جنسی از لحاظ شدت و نیروی پیشبرنده اولین حیجان بشری است ذهنی که به وسیله حیجان آمیزش جنسی تحریک شده باشد با سرعتی خیلی بیشتر از زمانی که این حیجان خفته یا غایب است ارتعاش می‌کند نتیجهی تأثیر میل جنسی افزایش سرعت ارتعاش افکار تا حدی است که تخیل خلاق نسبت به ایده‌هایی که دریافت می‌کند بسیار حساس می‌شود از طرف دیگر وقتی مغز با سرعت بالایی ارتعاش می‌کند نه تنها افکار و ایده‌هایی که از دیگر مغز آزاد شده باشد جذب می‌کند بلکه احساسی که به وسیله ذهن نیمه خداگاه دریافت شده و ذهن ناخداگاه بر اساس آنها عمل میکند را نیز تحویل میگیرد. ذهن نیمه خداگاه ایستگاه فرستندگی مغز است که ارتعاشات فکر از طریق آن پخش میشوند. تخیل خلاق مجموعه دریافت کننده ای است که ارتعاشات فکر از طریق آن از هوا دریافت میشوند. در کنار ذهن نیمه خداگاه و قوه تخیل خلاق که مجموعه های ارسال و دریافت دستگاه پخش ذهنی را تشکیل می دهد حالا به اصل خود تلقینی که واسطه ای است که از طریق آن ایستگاه پخشتان را به کار می توجه کنید فعالیت ایستگاه پخش ذهنیتان یک رویه نسبتا ساده است وقتی میخواهید از ایستگاه پخشتان استفاده کنید باید سه اصل را به یاد داشته باشید و با آنها عمل کنید ذهن نیم خداگاه تخیل خلاق و خودتلقینی دوباره به یاد آورید که نقطه شروع میل است بزرگترین نیروها ناملموس هستند انسان در طول اعصاری که سپری کرده است خیلی به حواس فیزیکیش وابسته شده است و شناخت خود را به چیزهای فیزیکی که میتواند ببیند لمس کند وصل کند و یا اندازگیری نماید محدود کرده است اکنون وقت آن است که یاد بگیریم خیشتن دیگر ما از خیشتن فیزیکی من که در آن را نظاره می کنیم است انسان ها با بی در مورد چیزهای ناملموس صحبت می کنند چیزهایی که انسان ها از طریق هیچیک از حواس پنجگانه نمی توانند آنها را درک کنند ولی باید به یاد بیاوریم که همه ما به وسیله نیروهای کنترل میشویم شویم که نامرئی و ناملموس هستند کل بشریت قدرت ندارد نیروی ناملموسی که در امواج غلطان اقیانوس‌ها پیچیده شده است را کنترل کند انسان ظرفیت ندارد نیروی ناملموس جاذبه که این زمین کوچک را به صورت معلق در هوا نگه میدارد و مانع افتادن آن میشود را درک کند چه برسد به این که این نیرو را کنترل کند اینهایی که گفتیم بخشی از ناگاهی انسان از چیزهای نامری و ناملموس است انسان نیرو و هوش ناملموس که در خاک پیچیده شده است را نمیشناسد. نیرویی نیروی که هر لقمه غذایی که میخورد، هر لباسی که می پوشد، هر اسکناسی که در جیب دارد را برای او فراهم می کند.